در مورد عشق هم مانند تمام بحث‌های لغوی به این مسئله فقط می‌توان جواب اختیاری داد مسئله مهم آن است که وقتی ما از عشق صحبت می‌کنیم بدانیم که منظورمان چه پیوندی است آیا منظور ما از عشق جوابی رسا و کامل به معما هستی است یا از عشق ناقصی گفتگو می‌کنیم که می‌توان آن را پیوند همزیستی و تعاونی نامید در صفحات بعد منحصرا از عشق به صورت نخست یاد خواهم کرد اما بحث درباره عشق را با معنی دوم آن آغاز می کنم. نمونه که همزیستی و تعاونی را می توان در رابطه بین مادر باردار و جنین مشاهده کرد آنان دو تن و در عین حال یکی هستند آنان با هم زندگی می کنند. به یکدیگر نیاز دارند جنین جزئی از مادر است اما آنچه را نیاز دارد از مادر می گیرد. گویی مادر دنیای اوست مادر به او قضا میدهد، از او محافظت می کند. اما زندگی خود مادر نیز به وسیله او تکامل می‌یابد و بهتر میشود. در نوع پیوند روانی همزیستی و تعاونی این دو جسم از یکدیگر مستقلند. ولی از نظر روانشناختی پیوند مشترکی بین آنها وجود دارد. صورت انفعالی پیوند همزیستی تعاونی همان تسلیم یا به اصطلاح پزشکی مازوخیسم است. شخص مازوخیست برای گریز از احساس تحمل ناپذیر جدایی و تنهایی خود را جزئی از وجود شخص دیگری می کند شخصی که حامی و راهبر اوست شخصی که حکم اکسیژن را در زندگی برای او دارد نیروی کسی که فرد مازوخیست به او تسلیم می شود در نظر وی صدچندان جلببر می شود خواه چنین کسی آدمی باشد خواه خدا انسان مازوخیست با خود میگوید که او همه چیز است و من جز اینکه جزئی ای از اویم چیز دیگری نیستم به عنوان یک جزء من جزئی از بزرگی و نیرو و اطمینانم. شخص مازوخیست هرگز نیازی به تصمیم گرفتن ندارد و هرگز احتیاجی ندارد که خودش را به خطر بیندازد. او هیچ وقت تنها نیست، اما استقلال ندارد. شخصیتش کامل و یکپارچه نیست و هنوز کاملا به دنیا نیامده است. از دیدگاه مذهب، شیء مورد پرستش بت نام دارد. در زمینه های غیر مذهبی نیز وضع عیناً به همین صورت است زیرا بت مکانیزم اصلی روابط عاشقانه مازوخیستی است روابط مازوخیستی ممکن است با هوس‌های جسمی و جنسی آمیخته باشد در این صورت این تسلیمی است که در آن نه تنها فکر انسان بلکه همه جسم او نیز می شود ممکن است انسان در مقابل سرنوشت بیماری، موسیقی ضربی، نشعه مواد مخدر یا هیپنوتیزم متوسل به تسلیم مازخیستی شود. در تمام این موارد شخص کلیت شخصیت خود را انکار می کند و خود را به صورت وسیلهای در دست دیگری یا چیزی غیر از خودش مبدل می سازد و دیگر نیازی به حل مشکلات زندگی خیش از راه فعالیت های بارور ندارد. شکل فعال پیوند همزیستی و تعاونی، سلطجویی یا به استناد اصطلاحی که روانشناسی برای مازوخیسم دارد، سادیسم نامیده می شود. شخص سادیست، فرد دیگری را جز الاینفک خود میسازد، تا تا بدین وسیله از احساس تنهایی و زندانی بودن خود فرار کند. فرد سادیست، با زیر سلطه قرار دادن شخصی که او را می‌پرستد، مغرور می‌شود و خود را برتر از آنچه هست می‌پندارد. میزان وابستگی فرد سادیست به شخصی که زیر سلطه اوست، همانقدر است که شخص مزبور به فرد سادیست وابسته است. هیچ یک نمی‌تواند بدون دیگری زندگی کند. تفاوت تنها در این است که شخص سادیست فرمان می‌دهد. استثمار می میکند، آزار میدهد، تحقیر میکند. اما شخص مازوخیست فرمان میبرد، می میشود، آزار میبیند و تحقیر میشود. از نظر واقعیت این تفاوت تفاوتی فاحش است. لیکن از نظر معنای عمیق عاطفی این اختلاف به اندازه وجوه اشتراک آنها نیست. پیوند بدون همسازی اگر این مطلب را درک کنیم دیگر از مشاهده افرادی که در عین حال نسبت به چیزهای متفاوت دارای رویه سادیستی و مزخیستی هستند تعجب نخواهیم کرد اکسل عمل هیتلر نسبت به مردم در ابتدا با شور و حیجانی سادیستی بود اما نسبت به سرنوشت و نیروی برتر طبیعت اکسل عملی مزخیستی داشت پایان زندگی او خودکشی در میان ویرانی عمومی، درست همانند رویای کامیابیش که عبارت از سلطه بر جهان بود، از وجوه مشخصه اینگونه اشخاص است. نقطه مقابل این پیوند همزیستی و تعاونی، عشق بالغ با حفظ تمامیت شخصیت و فردیت می باشد. عشق نیروی فعال انسان است. نیرویی که دیوار بین انسانها را می شکند، نیرویی است که او را به دیگران پیوند می‌دهد عشق انسان را بر احساس انزوا و جدایی چیره می‌سازد با این حال به او امکان می‌دهد که خودش باشد و کلیت شخصیت خود را حفظ کند در عشق تضادی وجود دارد به این ترتیب که عاشق و معشوق یکی می‌شوند ولی در عین حال دو نفر باقی میمانند. اگر بگوییم که عشق نوعی فعالیت است، یک دشواری پیش میآید که منشه آن مبهم بودن مفهوم خود کلمه فعالیت است. در دنیای امروز معمولاً به عملی فعالیت میگویند که با صرف مقداری انرژی تغییر معینی در پدیدهای مشخص به وجود آورد. بدین ترتیب کسی که داد و ستت می کند پزشکی میخواند شب و روز کار میکند، میز میسازد یا ورزش میکند، فعال است. و چه مشترک کلیه این فعالیت ها این است که همه به منظور دستیابی به یک هدف خارجی انجام میگیرند. نکته ای که در اینجا مورد توجه قرار نگرفته است، انگیزه فعالیت است. فالمسل شخصی را فرض کنید که در نتیجه احساس امیغ عدم امنیت و تنهایی به کاری مداوم و پیوسته کشیده می شود، یا شخص دیگری که به حکم جاحتلبی یا آزمندی و پول دوستی به این نوع کار روی می آبرد. در کلیه این موارد شخص برده نوعی شهوت است و فعالیتهای او در حقیقت نوعی انفعال است زیرا او به این سمت رانده و کشانده شده است او فعل پذیر است نه فعال از سوی دیگر آدمی که آرام در گوشهی می نشیند و به تفکر می پردازد و هیچ قصد و هدفی جز آگاهی از خود و با دنیا ندارد غیر فعال نامیده می شود زیرا از او فعلی سر نمی زند. در واقع این روش تمرکز قوا به منظور فکر کردن بالاترین نوع فعالیت یعنی فعالیت روح است. که تنها در صورت وجود آزادی درونی و استقلال شخصی امکان پذیر است یکی دیگر از مفاهیم فعالیت در دنیای امروز به کار انداختن نیرو برای رسیدن به هدف یا هدفهای بیرونی است مفهوم دیگر فعالیت به کار انداختن نیروهای ذاتی انسان است صرف نظر از اینکه این عمل تغییرات بیرونی به وجود بیاورد یا نیاورد. مفهوم اخیر فعالیت را اسپینوزا به روشنی فرموله کرده است. او قائل به تمایز بین انفعال فعال و فعلپذیر بین اعمال و شهوات است. انسانی که به عمل فعال می پردازد آزاد است. او عرباب عمل خویش است. ولی در عمل فعلپذیر شخص به دنبال عمل کشانده می شود بیان که از موضوع انگیزه های خود آگاه باشد به دین ترتیب اسپینوزا به این نتیجه می رسد که فضیلت و قدرت هر دو مثل یکدیگرند. حسادت، رشک، جاه و هر نوع هرس جزء شهوات محسوب می شوند عشق یک عمل است عمل به کار نیروهای انسانی که تنها در شرایطی که شخص کاملا آزاد باشد نه تحت اجبار و استرار آنها را به کار می گیرد. عشق فعالیت است نه فعل پذیری. پایداری است نه اسارت. اگر خیلی کلی بگوییم، خصیصه فعال عشق را می توان چنین بیان کرد که عشق در درجه اول نثار کردن است. نه گرفتن ایسار چیست؟ ممکن است این پرسشی ساده به نظر برسد اما در حقیقت پر از ابهام و پیچیدگی است. اشتباهی که اکثریت مردم مرتکب می شوند، این است که ایسار را با چشم پوشی از چیزی محروم شدن و قربانی کردن یکی می‌دانند. فردی که هنوز شخصیتش رشد نیافته و از مرحله گرفتن، سود جستن و اندوختن فراتر نرفته است، از کلمه ایسار چنین استنباتی دارد شخص بازاری همیشه حاضر است چیزی بدهد، اما تنها در صورتی که بتواند چیزی در قبال آن بگیرد ولی در مسلک او دادن بدون گرفتن، یعنی اینکه که کلاه سرش رفته است مردمی که با دید غیرتولیدی به محیطشان نگاه می‌کنند، معتقدند که ایثار موجب فقیر شدن میگردد. بدین ترتیب، اکثر این نوع افراد از ایثار خودداری می‌کنند. برعکس، عده‌ای آن را نوعی فضیلت به معنی قربانی کردن می‌دانند. اینان فکر می‌کنند که درست به همان دلیل که ایثار عملی دشوار و دردناک است، انسان باید ایسار کند و ببخشد فضیلت ایسار برای آنان در همان عمل پذیرش قربانی دادن قرار دارد برای اینان این اصل که ایسار بهتر از گرفتن است بدین معنی است که رنج محرومیت والاتر از احساس شادی است برای کسی که دارای منشی بار آور و سمر بخش است ایسار مفهوم کاملا متفاوتی دارد ایسار برترین مظهر قدرت و لیاقت آدمی است در حین ایسار است که من قدرت خود، غنای خود و توانایی خود را تجربه می کنم. احساس نیروی حیاتی و قدرت درونی که بدین طریق می یابد مرا قرق شادی می کند من خود را لبریز، فیاز، زنده و در نتیجه قرق شادی احساس می کنم. ایسار از گرفتن شادی بخشتر است، نه به سبب این که ما به محرومیتی تندر می دهیم، بلکه به این دلیل که شخص در عمل ایسار تجلی زنده بودن خود را احساس می کند. تشخیص اعتبار این اصل، با به بستن آن در مورد پدیده های مشخص گوناگون کار چندان دشواری نیست، ابتدایی ترین نمونه آن در زمینه سکس به چشم می خورد نقطه اوج عمل جنسی مرد همان عمل ایسار است مرد خود و عضو جنسی خود را به زن تفیز می کند و در لحظه انزال منی خود را به او می دهد. اگر قدرت جنسی مرد سالم و طبیعی باشد جبران چنین می شود و اگر نتواند ایسار کند، ناتوان است. برای زن هم جریان غیر از این نیست. گرچه تا حدی پیچیده تر است، او نیز خود را تفیز می کند. درهای کانون زنانگی خود را برای مرد می گشاید. او در حین گرفتن، خود نیز ایسار می کند. اگر او توانایی ایسار نداشته باشد و فقط دریافت کند، سرد و نتوان است. در مورد زن، عمل ایسار بار دیگر نیز اتفاق می افتد. اما نه در مقام یک معشوقه، بلکه در مقام یک مادر. او از وجود خیش به طفلی که در بطن دارد، زندگی می بخشد. به کودک خود شیر می دهد و او را از گرمای تن خود سیراب می کند. ایسار نکردن در اینجا دردآور است. در عالم مادیات، ایثار به معنی ثروتمند بودن است. آنکه میدهد ثروتمند است، نه آنکه بسیار دارد. مهتکری که نگران از دست دادن مال خیش است، هر قطر هم که داشته باشد، اگر با زبان روانشناسی بگوییم، باز هم فقیر و زبون است. آنکه توانایی بخشیدن از خود را دارد، ثروتمند است. او خود را به منزله انسانی احساس می کند که می تواند از خود به دیگران ببخشد. فقط کسی که جز ضروریات اولیه معیشت چیزی ندارد نمیتواند از بخشیدن اشیاء مادی لذت ببرد. اما تجارب روزمره نشان میدهد دهد که حداقل ضروریات از نظر اشخاص همان اندازه که بستگی به دارایی آنان دارد به همان اندازه نیز تابع شخصیت و منش آنان است. اکثریت می‌دانیم که فقرا به مراتب بخشند تر از ثروتمندانند با این وجود فقر هنگامی که از حد معینی گذشت بخشیدن را غیر ممکن می‌کند و بسیار موجب زبونی و خفت می‌گردد نه فقط به سبب رنجی که به طور مستقیم به وجود می‌آورد بلکه بدین علت که فقیر را از لذت بخشیدن محروم می‌کند اما ایسار چیزهای مادی چندان اهمیتی ندارد. ایساری که واقعا با ارزش است، اصولاً در قلمرو زندگی انسان قرار دارد. یک انسان چه چیز به انسان دیگر نسار می کند؟ او از هستی خیش، از گرانبهاترین چیزی که دارد، یعنی از حیات خیش ایسار می کند. این بدان معنی نیست که او ضرورتاً خودش را قربانی دیگری می کند. بلکه او از آنچه در وجود خودش زنده است به دیگری میبخشد. از شادیش، از علایقش، از ادراکش، از دانشش، از خلق خوشش و از غمهایش نصار میکند، از تمام مظاهر و تجلیات آنچه در روزنده اند میبخشد. او با چنین بخششی از زندگی خود فرد دیگری را غنی میکند. و در ضمن افسودن احساس زندگی در دیگری احساس زنده بودن را در خودش بارورتر میسازد. او به امید گرفتن نمیدهد. ایثار به خودی خود شادمانی شکوه مندی است اما انسان در ضمن ایثار خواه ناخواه چیزی را در وجود طرف زنده می کند و همین چیزی که زندگی یافته است به نوبه خود به سوی او برمیگردد در بخشش حقیقی انسان الزاما نمیتواند از چیزی که به او باز داده می شود سر باز زند بدین ترتیب هدف از بخشیدن بخشنده کردن طرف مقابل نیز هست که در نتیجه طرفین متقابلا در شادی چیزی که خود به آن زندگی بخشیده اند سهیم می شوند ضمن بخشیدن چیزی متولد می شود و طرفین سپاسگزار آن حیاتی خواهند بود که برای هر دوی آنها متولد شده است این نکته بخصوص در مورد عشق صادق است عشق نیرویی است که عشق میزاید. ناتوانی عبارت است از عاجز بودن از ایجاد عشق این اندیشه را مارکس به بهترین وجه بیان کرده است او میگوید. انسان را به عنوان انسان و رابطه اش را با دنیا به عنوان یک رابطه انسانی فرض کنید تنها در این صورت است که می توان را با عشق و اعتماد را با اعتماد پاسخ گفت و بر همین قیاس اگر می خواهید از هنر لذت ببرید باید پرورش هنری داشته باشید اگر می‌خواهید در دیگران موثر واقع شوید، باید خود شخصی باشید که نفوذی برانگیزنده و پیشبرنده در دیگران داشته باشد. هر یک از روابط شما با انسان و با طبیعت باید بیانگر مشخص زندگی واقعی و فردی شما با شیء مورد نظر باشد. اگر شما بی آنکه طلب عشق کنید، عشق بورزید به این معنی که عشق شما موجب به وجود آمدن عشقی دیگر نشود، اگر شما به عنوان فردی عاشق به کمک یکی از تجلیات حیات نتوانید معشوق واقع شوید، عشق شما ناتوان و یک فاجعه تأسف انگیز است. اما تنها در جهان عشق نیست که معنای ایثار رو گرفتن یکی است. معلم از دانش آموز خود می آموزد، هنر پیشه از تماشاگران خود شور و هیجان میگیرد و روان پزشک به وسیله بیمار خود درمان میشود. البته با این شرط که همدیگر دیگر را مانند شیء تلقی نکنند و رفتارشان نسبت به هم سمیمانه و سمربخش باشد لزومی به تحکید نیست که توانایی عشق ورزیدن همانند ایسار بستگی به رشد شخصیت و منش شخص دارد این امر متضمن جهتگیری بسیار بار آورتر است. فرد در این جهتگیری به وابستگی و به ذات نیرومند نفس پرستی خود علاقش به بهره از دیگران یا به احتکار فایق میآید و به نیروهای انسانی خیش ایمان میآورد و شجاعت و جسارت این را کسب می کند که برای نیل به هدفهایش به نیروهای خود تکیه کند. هرقدر این صفات در وجود شخص کمتر باشد به همان میزان از ایثار خیش یعنی عشق ورزیدن واهمه دارد علاوه بر انصر ایثار خصیصه فعال عشق متضمن عناصر اصلی معینی است که در کلیه اشکال تجلی عشق مشترکند اینها عبارتند از دلسوزی و غمگساری احساس مسئولیت احترام و دانش اینکه عشق متزمن دلسوزی و قمگساری است در عشق مادر به فرزند آشکارا دیده می شود اگر مشاهده کنیم مادری به فرزندش توجه ندارد و در تغذیه و نظافت و آسایش جسمی او احمال می کند هرگز ادعای او را مبنی بر عشق به فرزند نمی توان صادقانه تلقی کرد عشق او را وقتی قبول میکنیم که شاهد دلسوزی و غمگساری او نسبت به فرزندش باشیم حتی در مورد عشق به حیوانات یا گل نیز این موضوع صادق است اگر زنی بگوید که عاشق گل است و ما ببینیم که اغلب فراموش می کند گلهایش را آب دهد طبیعتا عشق او را به گل باور نخواهیم کرد عشق عبارت است از توجه و علاقه فعال نسبت به زندگی و رشد آنچه بدان عشق می‌ورزیم آنجا که این توجه و علاقه فعال وجود ندارد عشق هم وجود ندارد این عنصر عشق به زیبایی در کتاب یونس پیامبر بیان شده است خدا به یونس فرمان داد تا به نینوا برود و ساکنان آنجا را زنهار دهد که اگر از اعمال شریرانه خود دست بر ندارند تنبیه خواهند شد یونس از این معموریت میگریزد زیرا از آن بیم دارد که مردم نینوا توبه کنند و خدا آنان را ببخشد او مردی است با اعتقادی راسخ به نظم و قانون اما فاقد عشق اما در کوشش برای فرار خود را در شکم ماهی می که این نشان و نمادی است از حالت انزوا و زندانی شدنی که فقدان اشق و احساس مسئولیت متقابل برای او به وجود آورده است. خدا او را نجات می دهد و یونس به نینوا میرود. برای ساکنان آنجا همانطور که خدا دستور داده بود معزه می کند و آنچه خود از آن می ترسید اتفاق می افتد. مردم نینوا از گناهان خود توبه می کنند. کردار خود را اصلاح می کنند و خدا آنها را میبخشد و از نابودی شهر آنها منصرف می شود یونس سخت خشمگین و معیوس می شود او خواهان اجرای ادالت بود نبخشایش سرانجام یونس زیر سایه کدویی که خداوند برای حفاظت او از تابش آفتاب رویانده بود می آرامد اما هنگامی که خدا آن کدو را می یونس افسرده و خشمگین می شود و از خداوند گله می کند خدا به یونس جواب داد دلت برای کدو بسوخت که برای آن زحمت نکشیدی و آن را نمو ندادی که در یک شب به وجود آمد و در یک شب زایه گردید و آیا دل من به جهت نینوا نسوزد که در آن بیشتر از 120 هزار کس می باشند که در میان راست و چپ تشخیص نتواند؟ و نیز به های بسیار؟ جواب خدا به یونس تمثیلی است. او برای یونس توضیح می دهد که جوهر عشق زحمت کشیدن برای چیزی و رویانیدن چیزی است. یعنی عشق و زحمت جدای ناپذیرند. آدمی چیزی را دوست می دارد که برای آن زحمت کشیده باشد و برای چیزی زحمت می کشد که به آن عشق می ورزد. توجه و علاقه ضمنا جنبه دیگری از عشق را نشان میدهند و آن احساس مسئولیت است امروزه اغلب استنباط ما از مفهوم احساس مسئولیت انجام وظیفه یا چیزی است که از خارج به ما تحمیل شده است اما احساس مسئولیت به معنی حقیقی آن عملی است کاملا ارادی پاسخ من است به نیازهای بیان شده یا بیان نشده انسانی دیگر. احساس مسئولیت کردن یعنی توانایی و آمادگی برای پاسخ دادن. یونس در مقابل مردم نینوا احساس مسئولیت نمی کرد. او مانند قابیل می توانست این پرسش را مطرح کند. آیا من محافظ برادر خیشم؟ آدم عاشق پاسخ می‌دهد زندگی برادرش تنها مربوط به برادرش نیست بلکه به او هم مربوط است او در برابر هم‌نوعان خود احساس مسئولیت می‌کند همچنان که برای خیشتن احساس مسئولیت می‌کند این احساس مسئولیت در مورد مادر و فرزند بیشتر به معنی دلسوزی برای نیازهای جسمی فرزند است در مورد عشق بزرگسالان عشق بیشتر متوجه نیازهای روانی است اگر جزء سوم عشق یعنی احترام وجود نمی داشت احساس مسئولیت به سهولت به سلطجوی و میل به تملک دیگری سقوط می کرد منظور از احترام ترس و ایجاد حراس نیست بلکه بر مبنای معنای ریشه کلمه رپیزیر به معنای نگاه کردن توانایی درک طرف و آگاهی از فردیت خاص و یگانه اوست احترام یعنی علاقه به این مطلب که دیگری آنطور که هست باید رشد کند و شکوفا شود بنابراین مفهوم ضمنی احترام عدم استثمار است من میخواهم معشوقم برای خودش و به شیوه خودش پرورش یابد و شکوفا شود نه با هدف خدمت به من اگر من زن یا مردی را دوست دارم با او آنچنان که هست نماننده چیزی برای استفاده خودم یا آنچه نیازهای من طلب می کند احساس یگانگی می کنم واضح هست که احترام وقتی میسر است که من به استقلال دست یافته باشم یعنی موقعی که بتوانم بدون تسلط و کشی از فردی دیگر و بدون استفاده از چوب زیر بغل سر پای خودم به و راه بروم احترام تنها بر پایی آزادی استوار است به مصداق یک ترانه کوهن فرانسوی عشق فرزند آزادی است و نه نمولود سلطجویی